فبسم الله الرحمن الرحيم كتاب القراز كتاب القراز يهمون مزاربه وإذا اتفق الرجلان على أن يخرج أحدهما ألف درهم ليتجر الآخر بها فيما رأى من صنوف الأمتعة أو في نوع منها بأينه يوجد غالبا على أن يكون الربح بينهما نصفين أو يكون فيه متفازلين جازة می فرماید زمانی که اتفاق کردن دو شخص بر این که یکی از آن دو مثلا هزار درهمو بدهد تا دیگری با اون هزار درهم تجارت بکند چه در صنوف امتعه یعنی وسائل مختلف امتعه جمع متاعه صنوف سنفه های مختلف چه در یک نوع خاص که البته غالباً موجود باشه اینجا اشاره میکنه به نوع قراز قراز بر دو نوع خاص و عام. و در مورد خاص هم میگن زمانی جایزه خاص که غالباً موجود باشه مثلا موقعی که طرف اجازش میده که شما فقط در گندم مزاره بکن خب میگه موقعی اون جایزه که غالباً چه باشه؟ اما اگر در فصلی بود که یافت نمیشد، اون موقع جائز نیست با چی مزاربه بکنه یا اگر اصلا فصلش نبود ولی موجود بود در این حالت جائزا ولی مهم اینه که موجود باشه اون چیز مهم اینه که موجود باشه پس میگه زمانی که اتفاق کردن دو مرد بر اینکه که یکی پول خارج بکنه و دیگری با اون پول تجارت بکنه در اون چیزایی که خودش میبینه از صنوف یعنی وصائل مختلف سن مطاهاي سنف سلف يادر نوعي مشخص از كاله ها كه يوجد غالبا موجود باشه اتفاق بر تي كنند انوز داره على ان يكون الربح بينهما برينا ساسكي سود اون تجارت نصف نصف باشه بین صاحب پولو بین اون مزارب بین اونی که داره پولو کار میکیره. او یکون افیه متفاوت یا متفازل باش در سود مش مشکلی نداره آقا شما بیا این یک میلیون تومن منو کار بگیر در سود یک دومش دو مال منه چی دو سومش مال منه یک سومش مال شما. یک پنجمش مثلا بگم مال شما چار پنجمش ماله من به این شکل متفاضل باشن موردی ندارد و کان ربح بینه همه علامه شرطه هم بین اون دو نفر طبقه اون که شرط کردن حالا گفتن یا یک دووم دو یک سووم ها یک سووم سو مال شما یک جارون هر طور که شرط کردن خودشون والخسران و الخسران اگر نجبره ربحان، على رب المالي دون العامله. اگر هم حاصل شد، البته اینها همشون تفصیلات داره. یعنی این کتابو مختصری از کتاب بزرگه. میگه خسران اگر جبران نشد، با اگر جبران نکرد، اون سود پس بر صاحب ماله. نبر بر عامل بر اونی که کارش میگیره و لا تقديره تقدیره به مدتین او عملین زایدین جائز نیست که براش مدت تعیین بکنن اگر بیا اینا رو برو مزاربه کن مثلا تا یک مهل، تا این یک مه. یا یا عملی اضافی خارج از مزاربه میگه جایز نیست تقدیر کردنش به مدت البته این تفصیلات داره یا با عملی اضافی و متى فسخه احدهما چرا میگه جایز نیست که براش مدت تعیین کنه چون بعدا که کارو شروع کردن میتونن فسخ کنن میتونن چیکارش کنن میگه و هرگاه فسخ کرد مضاربه رو یکی از آن دو یا مرد این فسخه فسخ میشه خود قرار داده مزاربه چی میشه؟ فسخ. فسخ میشه و لم یکن للعامل انیشتری و کان لهو انیبیع لیارد در افل مال من جنسه خوب اومد مزاربه فسخ شد دیگه نمیتونه جدیدا چیکار کار بکنه؟ بخره وليمتنه كبفروشه تا راس المالو فرهم كنه ممكن اون اجناسو تبديل به كنه تبديل به كنه ولا يجوز أن يقارزه الا شراء سلعة باينها ميگه نيست مقارزه کنه با شخص بر یک کالای به اینی بر یک کالای چی؟ یک کالای به اینی آقا این چیز این چیزا. ولا الا ان يشتري الا من رجل و وهمچنين جایز نیست چون در حاوی آمده میگه زمانی که مقارزه کرد با شخصمون مزاربه کرد با شخص بر خرید مثلا به بعینه یا برده ای به هی یا کالایی به هی میگه قراز باطله زیرا ممکنه که اون چیز مشخصی که این آقا اومده مشخصش کرده تباه بشه. دیگه بعدا با چی میکنه اون که تباه شد دیگه نمیتونه بعد از اون بر چیزی بخره منظورش اون مزاربه خاص نیست که آقا بره گندم در جنس گندم برو مزاربه کن این ونجا تعین نمیشه که این گندو بله پس جایز نیست که مقارزه بکنه با شخص یا مزاربه بکنه با شخص بر کالایی به اینی و همچنین جایز نیست علیه ان الا من رجلن به اینی که از یک شخص به اینی بیاد خرید بکنه. ولا علیه ان یشتري ماشیة تحتابص رقابها و یقتن یقتن نتاجها. و همچنین این جائز نیست که بش بگه که آقا برو چارپا بخر که اصلش نگه داشته بشه و بعد چهایش تبدیل شد تقسیم بشند. بشند. مشخصه دیگه چرا؟ مزاربین اینه که این پول رو بره بخره اون چیزا رو بفروشه تا تاسود دیگه بیاد میاد. اینجا اصلش نگه داشته میشه نه؟ والا علی این له لهو ریب من المتعی باینهی و همچنین این جائز نیست ك... ربح شخص فقط از یک کالای به اینهی باشه خب ممکنه از اون کالا سود گیرش نیومد بگذار تمام اجناسی که طرف میفروشه از کل سود گیرش بیاد از کل چی گیرش بیاد بس جائز نیست که ربح طرف از یک کالای به اینهی فقط باشه ولا على ان يكون له من ربح ما يكفيه او يرضيه، وبيان بياند شرط بکنند و جائز نيس كه شرط بکنند كاغر ريبح ريب اينا غا مزارب باندازه كفايتش بکنه و راضي بشه خودش لا تبقى من قرارداد باشه تبقى چي واشه يك دوهوم يك سيفوم يك چاروم للعامل ان يصافر بالمال إلا بإذن ربي مسافر اجازه نداره که عامل اجازه نداره که مسافرت کنه با مال شخص، مگر با اجازش. چون در سفر خطر ز ولع ان بیع به با النسائی، الا بیفنه و عامل اجازه نداره که وامی بفروشد جنساش رو، مگر با اجازش و مؤنة العاملی على نفسه حزینیه. عامل بر خودشه خرج عامل بر کیه؟ البته یک اختلافی در مذهب شافه وجود داره و اون این هست که این عامل در منطقه خودش باشه که شب خونه شه یا مسافرت باشه بعضی میگن که در مسافرت میتونه از همون سود مال بشه از خرجش از سود باشه اما گروهی دیگه میگن نه چه در سفر باشه چه در غیر سفر باشه خرجش از خودشه در مقابل ربحی که گیرش میاد که ایشون یعنی ماورده همین نظریه رو ترجیح داده و مؤنت العامل على نفسه پس هزینه عامل بر خودشه و مؤنت المال من وسطه اما هزینه مال مثلا کرایه نیاز داره این مال میگه من وسطه این سلاح خیلی کم کار برده که ایشون بکارش برده همون سود میشه همون چی میشه؟ یعنی خرجی که شده کم میکنند از سود یا به شکل عرف از رأس المال برمیداره بعدا از سود میسر جشمیگذاره بعدا سود اضافه رو میان بین خودشون چکار میکنند؟ تقسیم میکنند ولا يجوز القراض الا بمضروب الدراهم و میگه جایز نیست قراض یا مزاربه مگر با ها و های زنده شده همون نقد همون با چی الا تایروز ذکر میکنن در کتب بزرگ میگن جهت اینکه دو طرف zarar نکنند. و اذا فسد و كان الربح والخسران لرب المال زمان که فاسد شد قراض به هر طریقی سبب شد که باطل بشه اینجا ربح و خسران برای کی هستند و عليه للامل اجر مثله و عامل و پاداش مثل بهش میداد که بقیه مزد بقیه چه اندازه هست به اون اندازه بهش میدندن ها طرف اینقدر کار کرده به اندازه کارگر به اندازه مزد بهش میدن دیگه سود بش گیرش؟, گیرش نمیاد پس سود و زرار بعد از اینکه باطل شد مال رب المال هستند صاحب مال هستند و عاملو به اندازه مزدش بهش میدن